بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله والصحبه أجمعين أما بعد سدو تشهلوا بانجومين حديث حديث أبي هرير رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه ميقوياتك رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور دادن به صدقه امران نبی صلی و صدقه فقال رجل عندي دينار گفتم که رسول صدقه بدید شخصی گفت یا رسول الله من یک دیناری دارم گفت که اون دینارت برای خودت خرج خودت کن یعنی قال الفق على نفسی قال عندي آخر یک دینار دیگه دارم دو تا دینار دارم در روایتی در صحیح سنن نبی داود قال بنم تصی میگه تصدق به على ولدک دینار اولی به خودت دینار دومی فرزندت دینار بعدی میگه الفق على زوجتک همسرت و دینار چهارمی انفق على خادمک من تابصر بعد از خدمتگزارت دیگه دیگران چند تا شدالان؟ الان پنج تا دینار اولی خودت بعد فرزندت بعد همسرت بعد خادمینت بعد دیگران تقسیم کن اون مالت نگاه کن اگر حاجتت برآورده شد ما فوق اون میتونی انفاق بکنی وگرنه نه. یک مسئله هست اینجا چرا فرزند قبل از همسر اومد چرا فرزند قبل از همسر اومد اول خودت بعد فرزندت بعد همسرت چرا؟ مولانا در شرحش گفتن چون فرزنده اگر تو خرجش ندی کسی نیست که خرجشون بده ولی زن نه زن میتونه طلاقش بگیره برای شوهر دیگه بگیره راهلی داره ولی اون فرزند راهلی نداره نمیتونه بره بگه بابا تو نمیتونی پدر من باشی من یه پدری دیگه میخوام برای خودم انتخاب کنم نمیشه میشه ولی اون زن میتونه اون زن میتونه بس این حدیث دلالت بر فضیلت انفاق <تصفيق> کردنه قدمونو خانوادامونو كسانا كسير دستمونن خب بعد قال مؤلف رحمه الله باب إذا كره أن يأكل ما عبده حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخرد بن زيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبي الزبير أنه سمع رجل يسأل جابر عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوه قال نعم فانكره احدكم ان يطعم معه فليطعمه اكله في يده 86 من باب غضب باب صحيح الدمرقد ما بخي رحمه الله باب اذا كره ان ياكل مع عبده قال الشخص يدوس نداش بابردش بخوره سری یک سفره این روایت را میاره 46مین روایت از روایت ابو زبر که ابن جریج اشناق میکنه میگه سمع رجلا یسال جابر جابر بن عبدالله الله فردی ازش سوال میپرسه عن خادم الرجل از گزارش اذا کفاه المشقت والحر اون خادم بیاد اون سختی را مشقت و سختی را اون گرما رو از دوش صاحبش برداره اذا کفاه المشقه والحر خب جمله اینطوریه سیاق اینه که بین جابر و اون شخصی که در ازش سوال میپرسه میگه امران نبی سرسل ایدعو میگه آیا رساسن دستور داده به جابر داره میگه اون شخص آیا رساسن دستور داده که اون شخص رو صدا بزنه که باش غذا بخوره یعنی من بالفرز خدمت گذاری دارم برام پخته گرما رو تحمل کرده سختی رو از دوش من برداشته الان آیا وظیفه منه که سر سفره هم کنار خودم بذارمش بخوره با من قاله نعم مع اگر کسی دوست نداشت که اون برده باش بخوره هو فیاده. اگر دوست نداشت از اون غذا با دست خودش بده بهش از همون غذا که میخوره بده به اون برده به اون خدمت گذار که اون شخص که اون برده از اون غذاهای بخوره نه که غذای ما چیزی باشه و غذای اونها چیزی دیگه باشه این حدیث چند تا مطلب توش هست یک مهمترینش توازعه اینکه شخص خودشو بر کسی بالا نبینه برتر نبینه فکر نکن نکوکالا تو مال داری پول داری این بر دستیره دستته هر کار دوست داشتی انجام بدی و به خودت بنازی و متکبر بشی مغرور بشی خودتو بالاتر و بهتر ببینی نه کسی بر کسی دیگر برتر نیست جز با تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم مهم اینه که انسان نزد الله چی باشه نه اینکه اینجا به مال خودش بنازه و بخواد سرکش باشه در این در این دنیا و یک برتری و فضلی از خودش بر دیگران ببینه از خودت ببینی مثلا اون ماله که زحمت کشیدی حالا به دست آوردی این مال مال منه نه مال مال تو نیست مال الله دست داده. این مال امانت دستت این جان امانت دستت است حق نداری با اون نعمتی که الله به تو داده با اون نعمت بر سر دیگران مننت بذاری و با اون نعمتی که الله به تو داده بر دیگران سرکش بشی بر دیگران چیره بشی و اونها را تحقیر بکنی نه کسی بر کسی برتر نیست در این دنیا اون نعمت هایی که ما داریم نعمت های الهی هم به دست ما الله هست به هر کسی یه چیزی داده کسی بر کسی برتر نیست پس این چی رو میده امیده؟ تواضع این تواضع رو میده. امیده همچنین اینی که ما جدایی بین ما و خدمتگزاران ما نباشه الله چی میخواد برده باشه، کنیز باشه یا هر کارگری، کارمندی نظم حقوق بگیری هست. اون برای خودش محترمه. حرمتشو نگه دار. اون وظیفه خودش مشخصه که چی انجام بده. ما فوق حق نداری تکلیفش بدی و حق نداری با چشم پایینی، دونی نگاهش بکنی. محترم احترام داره. همونطور که ما قبلا داشتیم حق نقصا گفتن نداری حق کتک زدن نداری اینجا هم همین نه اینکه اون حق رو بقول معروف اونجا داشتن بلکه بالاتر از اون مثل برادرت با سر سفرت مثل فرزندت با سر سفرت هم بشینن وگرنه حالا دوست نداری از گردنت ساقط میشه اگر از اون غذای خودت بدی بهش که بخوره ولی که دیگه غذا باید همون غذا باشه نه اینکه طرف بیاد خودش گوشت رو بردارو خودش بخوره بعد آب آب گوشت رو بذاره به اون خدمت گزاراش بده چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن به اینکه از همون غذایی که می‌خوریم به اونها بدیم فلیطعم و اکلهن فی یده بله. قال المؤلف رحمه الله باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی خالد عن ابیه عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس فإن لم يقبل فليناوله منه أحسنت أفتمين بابا الزبابة هي أدام مفرد قفتة إمان بخاري رحمه الله باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل يعني بعد كنشات سغزة بخورة خدمات وزار شم بزار كنار خودش كباش بخور يانا حديثة بخورة رميارة رضي الله عنه مثل حديثة قبلية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا إذا جاء أحدكم خادموهو بطعامه خادمتون غزاتون اوورد فليو جسو بذار كنارش باش بشين بخور يعني فإن لم يقبل اگر نخست نخست دوست ندريك مثلا ميخواه خود بخوري ومخانوات تنها واشي فليو ناوله منه از اون غزای که براش اوورده اش بده که اون خادم از همون غزا بخوره قال المؤلف رحمه الله حدثنا بشر ابن محمد قال اقبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محذورة رضي الله عنه كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءه وضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حولهم وأرقاء من أرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أريقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثير عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم سدو چهدو من حديث حديث أبو محزوره رحمه الله میگه که نشسته بودم با عمر امن خطاب کنتو جالسن عند عمر رضی الله عنه اذ جاء صفوان امن اومیه به جفنه صفان امن اومیه رضی الله عنه اوورد زرف غذایی را اوورد سینی غذا جفنه سینی اون زرف های بزرگ که توش بشخاب و کاسه میذارم یا مثلا از چوب، از تخته از برگ درخته نخله سینی های بزرگی که زرف توش چیده میشه یا غذا توش گذاشته میشه یحمل ها نفرم فی عب چند نفر بو هم حملش حملهش میکردن ظرف بزرگ بوده با هم دیگه چهار رو گرفتن آوردن فبا بین یادی عمر رضی الله عنه آوردن جلو عمر بن خطاب گذاشت فدا عمر الناس مساکین افراد محتاج و مسکین را عمر صدا میزنه که بیان بوها سر سفره بشینن و ارقا من راقا الناس حوله و بردگانی از بردگان مردم که دوربرش بودن فا اکلوا با عبراون خطاب رضی الله عنه سر سفره خوردن ثم قال عند ذلك اونجا گفت چینی فرمودن فعل الله بقوم و در روایتی لح الله قوم یعنی الله زش بکنه اعلان براعته از کسانی که کبر و غرور دارن و نمیخوان با بردگار خودشون سر یک سفره بشینن میگه الله زش بکنه کسانی که یرغبون عن ارقائهم ان یأکلون معهم کسانی که نمیخوان با بردگارشون سر یک سفره غذا بخورن الله زششون بکنه الله خارشون بکنه کسانی که مغرور و متکبره یعنی جالب یعنی این حادیث که بهمون یاد میده که چطوری در جامعه دید نسبت به همدیگه باشه صحابی میاد سر نماز لباسش لباسشو جمع میکنه بعد از نماز رسول الله صلی الله صدا میزنه میگه فلانی لباسشو جمع لباستو جمع کردی از کنار فلانی که ایستاده بود کنار نماز بخونه ترسیدی که فقرش به جانت آسیب برسونه یا فقر به جانت برسه ترسیدی که فقرش به جانتو بخوره جانتو برسه از فقرش ترسیدی که به تنت بخوره خب این چی یاد میده به ما تواضع نه که فقط تنها تواضعا بلکه برادری بلکه خیرخواهی نو یادت میده که چطور تو تعاملت با دیگران باشه دیگران را چطور ببینی نه که خودت رو همیشه برتر ببینی و فضلی از خودت بر دیگران ببینی فقال صفوان صفوان بن میمه رضی الله عنه اما والله ما عنهم لا والله ما خودمون از اونها جدا نمیدونیم ولکن نستاهر علیهم بلکه ما ایثار میکنیم یعنی ما گذشت میکنیم از حق خودمون بهنها میدیم اونها رو بر خودمون ترجیح میدیم ولکن نستاهر علیهم یعنی از خودمون میزنیم بخاطر اونها لا نجد والله من الطعام الطيب ما ناكل و نطعمهم لا نجد والله والله میگم چیزی نداریم از اون غذای خوب پاک که بخوریم و بهنها بدیم نداریم اگر داشتیم اول بهنها میدادیم بعد خودمون می خوردیم یعنی اگر داشتیم اول بنها می دادیم و بعد خود میخوردیم این نهایت چیه؟ نهایت تقوی و پرهیزگاری و نصح امام به رعیش نصح امام به رعیش الان امروان خطاب رضی اللہ عنه قبل از اینکه کسی چیزی بگه کسی بگه که چرا تو امیر المؤمنینی داری با خادمینیت میخوری؟ الان اینطوری زمان خودمون این اینطوریه مثلا همه تعجب میکنن چطور اون فلانی نشسته با کارگراش رو غذا میخوره مثلا میفرید یا کارمنداش مدیر مثلا اومده با کارگراش یا کارمناش غذا میخوره تعجب میکنن شاید انکارم برش بکنن اما خطاب بر عکس اینکارش بر دیگرانه که چرا با خدم خودشون با خدمتگزاران و کارمندان خودشون غذا نمیخورن اصل اینه این کار اینه اینجا این جای انکار رو داره چرا شما؟ توازوع ندارید چرا شما این کار انجام نمیدید باید چینین باشه نباید خودتون رو جدا بدونید و جدا بشمورید این توصیه هست و وزیفه نصحه نصیحت که رعیه کسانی که زیر دست اون امیران حق دارن بگردن اون امیر حق نصیحت دارن نصیحتشون میکنه بله قال المؤلف رحمه الله باب ادا نصح العبد لسيده حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين حشتد حشتومين بابز أبواب صحيح هذا قفتي إمان بخاري رحمه الله باب إذا نصح العبد لسيده كسي حق النسيحات برأيه سید خودش آقای خودش اون برده انجام میده یعنی هرگاه اون برده حق اون سید رو عدا میکنه اذا نصح العبدال سیده نصح این نصیحت نصح تنها با گفتار نیست بلکه با سلاح در اون کاری که بهش سپرده شده مسئولیتی که بردوشش هست نصیحته رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وقتی که فرمیند دین و نصیحت دین و دین و قال من یا قال لله چطور نصیحت لله؟ استعباد ده دنا به سوی دین اس حق دین را ادا کردنه عمله بس نصیحت تنها با چی با گفتار نیست که فقط امر و معروف را از مکف کنیم همون نمازت نصیحتت لله قالوا لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله این نصیحت الا اینجا این نص نصح, نصح بر ده برای سید آقا خودش امام بخاری این حدیث را میاره حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیثی شمرایسه چلونو ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان العبد اذا نصح لسیدی ان العبد اذا نصح لسيده و احسن عبادت ربه فله اجرهم مرتين اگر برده حق نصیحت اون آقای خودش را صاحب خودش را مالک خودش را ادا بکنه حق نصیحت اسراف نکنه در غذا کاری که ازش خاصه درست انجام بده این نصیحت اگر مسئولیتی بهش سپرده اون حق اون مسئولیت را ادا بکنه حالا اینجا در هر نوع وظیفه و شغلی هم این مسئله واردداد چه میخوای کارمندی باشی چه میخوای معلمی باشی مدیری باشی شاغلی باشی در موسسه ای فرقی نمیکنه وظیفه داری که اون مسئولیتت که در اعاضای اون حقوق میگیری وظیفت اون وظیفه رو درست انجام بدی اگر اون وظیفه رو درست انجام ندادی اون وظیفه که در ازاش حقوق میگیری اون مال سخته برات اون مال تو حرامه اگر ادا کردی مسئولیت رو ادا کردی و احسن عباده ربه و در کنارش عبادت الله را انجام دادی فله اجره مرتين دو تا اجر داری دو تا اجر یعنی دو, دو بار اجر میبری یک اجرت به خاطر اون خدمتگذاری که میکنی که گفتیم خدمتگزار اللهی و خدمتی دیگرم غیر از اون بحث دنیاویش بحث اخروی از اون نماز و طاعتی که انجام میدی در کنار اونم اجر دیگری خواهی داشت یعنی اینجا یک اشاره ای هست به روزمرگی انسان انسان از وقتی که بیدار میشه یا در تعاملش با دیگران اون خادمه در مقابل مالک خودش ثواب داره در مقابل هر کاری که انجام میده و یا امر اخروی حق و حقوق الهیه از اون نماز و عبادت اونم در مقابلش تو عجر و پاداش داری زندگیت از صبح تا شب حتی اون خوابت که باش قوت میگیری که نماز صبح بیدار بشی یا تحجد بیدار بشی یا براش انرژی میگیری که فردا بتونید درست ریپای خودت سی کار بکنی حتی اون خوابت عبادت اینا هر کدوم برای خودش عجر مستقلی رو داره بعضی از علمایی یک مسئله اینجا اشاره کردن فله و, و مرتين. اونم و این اینجا دوبار اجر داره نه به عنوان استقلال کار دوم از اول یعنی اینکه این شخص اون عبادت اللهی که انجام داره میده غیر از اون خدمت مالک خودشه نه همون خدمت مالک از یه طرف ادای واجبه از یه طرفش اون خدمت گزاریش خود خدمت الله یعنی خادم الله عامل الله اینجا هست که دو تا اجر داره یک اجر در مقابل اون ادای واجب یک اجر هم به خاطره اون خدمت گذاریش که با اون خدمت گذاریش چیه؟ خادمی از خادمینه الله شده. از این بابه چی؟ با خوب ادا کردن این مسئولیت دوتا عجبی بره. ما الان تا شرح رو بر این حدیث رای دادیم. شرحی که نوبی اشاره کردن و شرح دیگر ابن عبدالبر که ابن حجر ازش نقل میکنه میگوید معنی هذا الحدیث عندی أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربي في العبادات وطاعة سيدي في المعروف فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته هناك أيضاً لديه مسئوليات بقاعدة نشبه شيء الطاعة سيده خدش ومالك خدش وطاعة الديقر از الله جل وعلا هر دو عبادات من بنحو أحسن أنجام بده دو أجر داره بالخلاف ونكسي آزاده. اون کسی که آزاده فقط اون اجر عبادت و طاعتشو داره ولی این شخص اجر اون اطاعت در مقابل مالک خودش هم, دوبر هم اجر داره دوبار اجر میبره لن قد سواهو في طاعت الله و عليه علیه بطاعته من امره الله بطاعته اون جو هم اگر داره اطاعت میکنه از مالک خودش از باب چیه اطاعت از الله چون الله گفته که اون برده از مالک خودش اطاعت بکنه خف حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمر إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة صدف عن جهومين حديثة, حديثة أدام مفرد حديثة بموسى رضي الله عنك مجيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران سي شخصا كي دوبار أجر دار مثل حديث ولا بلغة إضافة ما سأيله هزار إن حديث كذا حديث قبله نبود. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران فردي أز أهل كتابه إيمان بمسلم بإيسا وورده إنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وورده دوتا إيمان براش حساب مش هم إيمان ببيانبر خودش هم بإيمان بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إنجا والعبد المملوك اذا ع حق الله و حق موالی و پیررووای حق عمل که یه عملیک و برد حقوق الله را اددا میکنه و همچین حقوق مالک خودش چنانچه در گفته ابن بدل برداشتی عبادته که به گردنش هست بینیکی انجام بده چ حقوق ا ال هیچ حقوق مالک خودش دوبار اجر داره و راجل اون كانت ع ده اماتون یقعها شخصی کمیزی داشته باهاش هم بثری میگرده فا فاحسن فا احسن دروس خوب درست تربیتش میکنه و علمها فا احسن تعدیمها یادش میده علم انم العلم به بالتعلم علمه باید بیاموزیش قرآن یادش بدی حروف یادش بدی زحمت داره اگر این تعلیمت لله باشه ثم اعتقها فتزوجها بعد از این یاد دادن تربیت کردن آزادش بکنه و باش ازدواج بکنه فلهو اجران دوبار اجر داره اجر اون تعلیمت، و اجر اون آزاد کردن و ازدواجش هرچند که اینجا چندین اجر برای حسن شخص آخری جمع میشه یعنی از حسن تربیت و آزاد کردن و ازدواج هر کدوم یک عبادتی برای خودش اینجا برای این شخص اون چیزی که الان دوبار تکرار شده از اجر و ثواب اجر آزاد کردن و اجر چی ازدواج کردن فاعتقها فتزوجا ثم اعتقها فتزوجا آزادش بکنه اجر آزاد کردن و رو برنده داره اون کنیز رو داره و اززواجش فتح زواجها و اون زن که خودش خوب تربیتش کرده هم ازدواج کرده قال عامر عامر میگه اینجا جنات در روایت صالح ابن حیان اومده که شخصی که اهل خراسان بوده وقتی که این روایت را بهش میگه عامر عامر یعنی به شخص خراسانی میگه اعتینا که ها بغیرش ای خراسانی یعنی این حدیث و این روایت را بدونی که زحمت بکشی به دادی و قد کنه ی یعنی کمتر از این به حدیثی کمتر از این کوتاه‌تر از این شخص از خراسان اون مسیر مسافرت را اون مسیر را طی کرد خاطر که یک حدیثی رو بشنوه فقط که انا یُرکب فما دونها الی المدینه یعنی کمتر از این به حدیثی کمتر از این شخص هجرت میکرد سفر میکرد برای شنیدن یک روایتی قبلا در زمان خودشون اصحاب یاران صحابی میره به شام فقط به خاطر یک حدیثی که نشیده از رسول از دیگر مثل خودش بشنوه اهمیت چیه؟ اهمیت علم، مثل شخصی زورش میاد با این همه ابزار و وسایل ماشین، موتور ده کیلومتر فاصله است بیاد سر جلسه 304 تا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام بشنوه. میگه صحابی میگه میگه در دوران ما این به تابعی داره میگه در دوران ما به خاطر یک حدیثی کمتر از این شما الان 3 حدیث شنیدید. میگه به خاطر اون یک حدیثی کمتر از این شخص بلند میشد مشاق سفر و موقع با اون شطور با اون قافله و ماه تو سفر باشه به خاطر یک حدیث را بشنوه کمتر از این حرص صحابه هست بر طلب علم محاسبه نفسشونه اینه که جلوه الله روز قیامت که میان سفید باشن که تلاش کردن برای دینشون زحمت کشیدن درست یا نه؟ غیر از این میتونه باشه این صحابه رسول الله صلی اللہ وسلم این چین تذکر و یاداوری داری م این حدیث الان دارم داره میگه بهش عامر شعبی میگه این حدیث دارم به راحتی و آسونی بهت میگم خسته نشودی الان اینجا نشستی دارم بهت میگم این حدیث براش زحمت کشیده شده همینطوری به دست شما نرسیده همینطوری به دست من نرسیده اینجا دارم براتون میخونم پدر بخاری مالشو وقت میکنه که بخاری بلند بشه بره به بغداد و از بغداد به شام و از شام به مصر و از مصر به یمن و به شرق و غرب مملکت اسلامی بره تا این حادث رو تدویم بکنه و برای من و شما بازگو بکنه زحمت کشیدن ها. یک حدیث یک حدیث از شهری به شهر دیگر پیسی پیشی این پیشی اون رفتن شنیدن و بعد, و بعد برای من و شدبن نخ کردن حمد داشتن بعدم هم همیشه آخران جلو چشاشون بود روسفید بشن جلو خدا در مقابل اون دینشون در اون تکلیفی که بهشون داده حقش رو ادا کرده باشن و دنبالش بوده باشن. چون بعضی جا هست انسان هدف نداره، بلا تکلیفه، خودش تکلیف، خودش با خودش مشخص نیست یعنی نمیدونه چه کار بکنه، نمیدونه چی به گردنشه، دنبالم نیست که بدونه چی به زحمت نمیکشه، براش مهم نیست چون بی هدفه، بدونه چشمندازه. اصلا نگاهی اصلا به آخرتش نداره هرچی شد آخرت، آلا. یا بهشتی یا جهنمی، هرچی شد فکر می‌کنه که می‌تونه از پس اون عذاب جهنم بر بیاد فکر می‌کنه اونجا راحته حساب و کتاب و میزان و ترازو راحته این شلگیری و سوس‌گیری در ازای چیه بی چیه اون چشماندازه ضعیفه اون هدف ضعیفه به آخرتش طرف فکر نز... نکرده محاسبه نفس خودش نکرده حساب و کتاب رو سنگین نگرفته ساده گرفته اینو باد ما در خودمون سر... سرزنشش بکنیم اینو بی اهمیتی این این مسئولیتی در مقابل شریعت و در مقابل وحی الهی اون چیزی که الله وحی کرده با ارزشه ارزش بهش ندادی با ارزشش نشمردی خودت تحقیر میشی ارزش ندادی به اون چیزی که ارزش داره الله بهش ارزش داده یرفع الله الذين امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات با علم الله با علم ایمان که الله تو رو بالا میبره چیزی که بالا نره پایی میاد. با جهل که تو اسفل صافلین میشی، با جهل که تو حقیر میشی، با جهل که تو ظالم میشی، با جهل که تو فاسق میشی، فاجر میشی. تو در گناه و معصیت میفتی. جهل. بس تو تلاش بکنی که جه را از خودت به تلاش باید بکنی، زحمت باید بکشی. بله، قال المؤلف رحمه الله باب العبد راع حدثنا اسماعیل بن أبي ويسن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته و عبد الرجل راعن على مال سیده و هو مسئول عنه على کلکم راعن و كل مسئول عن راعیته اشتاد النهومین باب گفته ایمان بخاری رحمه الله باب العبد راعن عبد مسئوله عبد ان برده هم مسئول راعیته اون وزیفه هست که بهش رفورده شده حق اون وزیفه را دا بکنه مسئوله متعهده 151ومین 151ومین حدیث حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که می‌گوید رسول الله صلی الله علیه و الا كلكم را حرفه به الا آگاه باشید که همه شما مسئولید، را میخوای برده باشید، آقا باشید یا میخوای مالک و سید باشید فرقی ندارید همتون مسئولید. همتون مسئولیتی بر دوشتون هست. چه مسئولیتی؟ و كلكم مسئول عن رعیت هر کسی در مقابل زیردستان خودش مسئوله. مسئول چیه؟ مسئول در مقابل آب و غذاشو مسئول در مقابل دین و هدایتشو حق نصیحتشو مسئولیت منم اینجا من مسئولم در تعلیم منم مسئولم در مقابل نان و آب زن و بچه‌ام مسئولم هر کدوم از ما مسئولیتی به من هست فالامیر الذي علی الناس راع و هو مسئول عن رعیتته اون امیری که امارات داره بر مردم حالا میخواد خلیفه باشه، امیر بر مردم باوری، یک حاکم باشه، پادشاه باشه، هر کسی میخواد باشه. اون شخص مسئوله و اون مسئولیتش در قبال اون مردمی که زیر دستش تمامی مردم، همیشه حق تمامی مردم به گردنشه. مسئولیتش خیلی بزرگتره. اون حاکم با اون پدر و راجور راعن علی اهل بیته بعد از اون حاکم ورد پدر، پدر در یک خانواده حاکمه مسئوله بر اهل خانوادهش و هو مسئولن علی رعیت. و در مقابل اون خان و مسئوله و عبد الرجل در وقتی اول راعن على مال سیده اون برده و اون همین همیتور در مقابل مال مالک خودشون مسئولا پای مالش نکنن هدرش ندن با اصراف و هو مسئول عنه و سؤال میشه همروز قیامت یعنی در مقابل این مسئولیت یعنی هر کدوم از اینا امیر در مقابل حقیقی که مردم به گردنش دارن روز قیامت سوال میشه و هو مسئول عن رعیت روز قیامتم سوال میشه و الرجل الراعي عن اهل بيته وهو مسئول عن رعيته مسئول در مقابل اونها و روز قیامتم سوال میشه اون برادر همینطور سوال میشه روز قیامت و المراه راعيه في بيت زوجها و هي مسؤوله زنم همینطور اینطور مسئول در خونه و وظایفی داره به گردنش و روز قیامتم سوال میشه نمیکنید کنید چندتا چیز شما دارید اینجا از بالا شروع شد حاکم پدر خادم همسر هر کدوم یک مسئولیتی دوششون هست و هر کدوم هم در مقابل این مسئولیت و وظیفه بازخاص میشن غرب برای اسقاط حکومت ها حکومت های اسلامی حالا میخواد خلافت باشه میخواد پادشاهی باشه که شهر برایش قالب مهم نیست برایش زمامداری امور مهمه امن و امنیت مهمه شهر برایش این مهمه مقصود مهمه مهم محتواست نه اسمها اسم پادشاه، اسم امیره اسم حاکمه، اسم رهبره، اسمش سلطانه اسمش میخواه هر چیزی بذار مهم اینی که مقصود یکیه اون شخص مسئولیتی داره در قبال زیر دستان خودش غرب خوصا ناپلان و وقتی که حملوبر بیشه به الجزائر و کشت و کشتار میکنه و بالای یک میلیون هم اونجا به شهادت میرشه و میکشه از مسلمانا یه چیزی که خودش یاد میکنه میگه من رنج میبرم ازش در این جنگ ها و نبرد ها و از این سلابت و سختی مسلمان ها و استقامتشون در مقابل استعمار با این همه تجهیزات میگه که کانون خانواده است. ما اگر نتونیم کانون خانواده را خراب بکنیم نکنی از پایین نقشه میریز آناپنوموناپارد دیویز سال قبل اون کسی بود که اسرائیل رو برای نقشه داشت و یهود را برای بال اول در سال 1799 در فرانسه جمعشون کرد و برنامه ریخ برای اسقاط دولت عثمانی و برای اووردن یهود به سرزمین فلسطین و همه نقشه ناپلئون بناپارت بود. برای اسقاط دولت مصر، پادشاهی مصر برنامه ریخته بود. یکی از پروژه‌هاش این بود که ما نمیتونیم ها را ساقط بکنیم تا اینکه زن را در خونه ساقطش بکنیم، یعنی زن را از خونه بکشیم به بیرون. زن مادری که در خونه نشسته مسئول بر فرزندانش، در رو تربیت میکنه ما اون جهادی‌ها رو داریم. که استقامت بکنن در جلو ما اگر زن رو از خونه بیرون کشندیم تونستیم بر اون خانواده چیره بشیم دیگه خانواده وجود نخواهد داشت خانه بی خانوم خانه نیست ویرانه هست، هتله. زن رو مشغولش اون خانم رو از خانه بیار بیرون اون بچه ها میشن بی خانوار بی سرپرست نه مرد مردم داره زحمت میکشه برای نون شبشون زنه هم داره زحمت میکشه زنه تو خونه نیست تو بازار یا تو که چه خیابونه مشغوله یا سر هاست یا فلان بی مسئولیته مردم که مشغوله بچه هم سرپرست هر طور دلشون خواست با هر برنامه تلویزیونی با بازی با موبایلی میتونن اونها رو هدایت بکنن با این روش میتونن چیره بشن بر عالم اسلامی و این گفتم این برنامه 200 سال قبل شده اولین چیزی که نقشه براش کشیدن خانواده بود تفکیک خانواده با شعره آزادی زنان برابری زن و مرد خیلی ها از فرهیختگان یا از دانشمندان و, و از اساتی دانشگاه و ادبا امثال سید خود فری به این شعار رو خوردن و خودشون هم میگن امثال محمد عبدو جمال الدین میگه خود جمال الدین افغانی یا اصدوادی میگه که من ماسونی اولی ولی نمیدونم حقیقت ماسونیت چیه برای اونها دارم کار میکنم هدف من برابری زن و مرده. شعار بی داد زن و مرد با هم دیگه برابرن هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. بواید زن از خونه بیام بیرون باید کار بکنن. میاد ایران، شاه بیرونش میکنه میره مصر، مجله مینویسه اوروت البثقه و نمیدونم فلان و شعارشون این بود. محمد عبدالحمید تو خیلی آفری بهشون خوردن. ماسونی شدن ولی خودشون هم نمیدونن ماسونیت چیه. فریب شعارهای ماسونی رو خوردن و خود به خود جامعه درگیر ماسونیت شد، درگیر این شعارها شد. تو دانشگاه ها گرفته تو مدارس گرفته خیلی ها ماسونی هم خودشون نمیدونن با آن طرز تفکرشون با آن طرز تفکر سکولاریسم خودشون و لیبرالیسم خودشون اینها نقشه های امروز و دیروز نیست صدها سال قبل براش اون انجمنه های سری یهودی براش برنامه ریختن بس مهمه شن خانواده و مسئولیت هایی که به دوش هر فرد در اون خانواده است چه پدر مسئول حساب میشه سوال میشه از اون روز در روز قیامت چه فرزن چه اون خادم و چه اون همسر همه مسئولن و خصوصا مرد که در مقابل اونها قیومه بخاطر همین بعد از حاکم مسئولیت مرد مسئولیت مرد را میره رسول صلی الله علیه و سلم اول ورد امیر بعد ورد و رجل راعد علی اهل بیته بعد میگه که سمعت ها اولائی عن النبي صلی الله علیه و سلم بن ملغین ها را از رسول الله صلی الله و سلم شنیدم و احساب النبی صلی و سلم قال: "ما به اینی که رسالتم اینجا چینیم گفت." این از دقتشه میگه و الرجل فی مال ابیه و شخصا در مقابل مال پدرش مسئوله. علی كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته. آگاه باشید که هر کدوم از شما مسئولیت در مقابل زیردستان خودتون مسئولم میشید روز قیامت در مقابل این مسئولیت. در فتول باری یک مسئله رو مطرح میکنه از علامه تیبی میگه که أز لا تأي في إيه حدث، أز نقاط ريزي إيه حدث، رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا تكرار كادر، على كلكم راع، دوبر كلامين رحمك الله، دوبر كلامين الا أوجه وشين، أوجه وشين وتكرار تكرار مكرر، كلكم راع، على كلكم راع دوبر ذا ابتدى حدث وأخر حدث. میگه و آتا تنبیه مکررا و ختم بما يشبه الفذلک اشاره الی سیفه التفصیل جمله را فارق قاعدی فارق شده از جمله به پایار رسون با تکرار مطلب قبلی از باب تاکید از این که کسی در جامعه بدون مسئولیت نیست هر کدوم مسئولیتی دارد بدونید کسی بدون مسئولیت نیست هر کسی هر مسئولیتی به گردنش باشه در مقابل اون مسئولیت بازخاس میشه حساب میشه شخصی زن نداره بچه نداره پدر نیست، حاکم هم نیست بلی مسئول خودش که هست زن و بچه نداری، حاکم نیستی، امیر نیستی تو در مقابل خودت مسئولی اون آبت، اون غزات در, اون در... در مقابل اون واجباتی که الله به گردنت گذاشته که عدا بکنی از نماز و طاعت تو مسئولی بله بابی بعدی قال مؤلف رحمه الله باب من احب ان يكون عبدا حدثن و قال حدثنی سلیمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا الله أكبر نهادمین با بز مفرده من من بابو من بس باب سهید مفرد من بخاری، گفته من بخاری، باب و من احبا یکون عبداً از باب را میزاره، کسی که دوست داشت برده باشه، خبور را ردی الله عنه میگوید که رسول الله صلی و سلم چنین فرمودن؟ العبد المسلم ادده حق الله و حق سیده لأجرا، کسی که حق حقوق مالک خودش را انجام بده و حق حقوق الله را هر دور باهم درست انجام بده دو تا اجرا داره بعضی ها این قسمت دوم را جز این حدیث حساب کردن ولی خب مدرجه یعنی از گفته خود ابو هریره است. والذی نفس ابو هریره بیاده در بعض روایت هایی می‌دونیم والذی نفسی بیاده. صاحح اینجا گفته ابو هریره است. ره والذی نفس ابو را بیاده. قسم من کسی که جان ابو هری بدست قسم با الله. لولا الجهاد و فی سبيل الله. والحج و بر اگر جهاد نبود حج و حج یعنی حج تطوع نه حج فرض. و نیکی به پدر ما درم یعنی که اینها شاید جهاد و حج تطوع، و خوبه و احسان به پدر مادرش شاید اینها جایگزین باشن در مقابل ثواب این شخص این شخصی که دوبار عجر رو داره این برده میگه لحباب تو این اموت مملوکه یعنی اگر اینها نبود دوست میداشتم که من برده بودم و برده میموردم چون برده دوبار عجر رو داره عجرش در مقابل اون حق مسئولیتی که به گردنش سپرده شده از اون مالكش وحق الله جل و شأن مقابلون عبادتها امام ابن در شرحين الحديثك مسالية شاربه يقول ميكو المراد به حج تطوعي إن قصد حج التطوع لأنه قد كان حجة حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شون أبو هريري حجة إسلامي شون أنجام ده بوت يقول فقدم بر الأمي على حج تطوع لأن برها فرض در رواية ديقاء ومده غلبانيهم يكون يقولون ميكو يقولون در روایت دیگر نظر ما مسلم امده قال زهری و بلغن ان ابو هريرة لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها یعنی بقاطل اینکه هم باشه مادرش حج تطوع رو انجام نمیداد این دلات بر این میده که حق مادر واجبه واجبتر از اون حج تطوعه و مقدمه برش چون احسان به والده و برخوبی به اونها واجبه و حج انجام دادن غیر از اون حج فرض تطوعه احسان و نیکیه که س اگر اینها نبودن از اون خوبی ها دوست داشتم که برده بودم از دنیا میرفتم و میمردم سبحانك الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله صلى الله عليه محمد و محمد